فردوسی دیگه بر سر این پیغام نمیره و حتی وقتی که دیدار بهمن با پدرش هم پیش میاد دیگه این مطالب چون گفته شده مطرح نمیکنه اینارو. اینا رو حکیم که زرستم چو بشنید بهمن سخن روان گشت با موبد پاکتن تهمتن زمانی برهدر به زواره فرامرز را پیش خاند کزیدر به نزدیک دستان شوید به نزد مه کابلستان شوید بگویید که سفندیار آمده است جهان را یکی خواستار آمده است به ایوانها تخت زرین نهید بر او جامعه این نهید چنان هم که هنگام کابوس شاه از آن نیز پرمایه تر پایگاه بسازید چیزی که باید خورش خورشهای خوب از پی پرورش که نزدیک ما پور شاه آمده است پر از کینه و رزم ها آمده است گوی نامدار است و شاهی دلیر نیندیشد از جنگ یک دشت شیر شوم پیش او گر نوید به نیکی بود هر کسی را امید اگر نیکویی بینمن در سرش ز یاقوت و زر آورم افسرش ندارم از او گنج و گوهر دریغ نه برگستوان و نه گوپال و تیغ و اگر باز بازگرداندم ناامید نباشد مرا روز با او سپید تو دانی که آن تاب داده کمند سر جنده پیل اندر آرد به بند زواره به دو گفت من دیش از این نجویت کسی رزم کش نیست کین وقتی راستن میخواد به که اگر نه من نامید کرد بعد این کمند همچینه میگه برادر این حرفا رو نزن اگر دنبال رزم نیستی کسی که کینه نداره دنبال رزم نیست این حرفا رو فراموش کن و دیدید که رستم بلا فاصله به محض اینکه که پسر راه داد پیغام بفرسته به پدرش که تختها رو بگذارید و جارو بکنید خورش بیارید پسر پادشاه آمده تعریف تهیه ببینید بیش از اون چه تا حالا بوده بیش از اون چه درباره کاووس کردید بیش از اون چه درباره کسان دیگر کردید بعد به بهمن هم میگوید که من خودم پیاده بی سوار الان میام پیش پدرت و او رو میبینم برای که دعوتش بکنه به مهمانی. بعد که میاد با پدرش گفتگو میکنم و اینا میگه که اگر دیدم که نیکویی در سرش باشه که خب و خوش میگذارینیم اگرم منو ناامید برگردونه میاد که به یک تهدید و کمندونه اینا زوارا میگن این حرفو فعلا کوتاه کن کسی که کینه نداره دنبال رزمم نمیگرده ندانم به گیتی تو اسفندیار به راو و به مردی یکی نام دار نیاو ز مرد خرد کار بد ندی ز ما هیچ کردار بد اینو زواره میگه زواره بیامد نزدیک زال و زون روی رستم برافراخت یا بیامد دمان طالب هیرمند سرش تیز گشته ز بیم گزند در عین حال که این حرفا رو میزنه ولی اوزا بعد و همونطوری که استندیار از بیمه گزند ترسان و نگرانه رستم هم از بیمه گزند نگرانه و ناراحت از اینکه مبادا از این رفت آمد یه حادثه بد پیش بیاد به بهمن هم گفته بودی که من خودم میام تنها بدون سواران و پدر تو رو خواهش میکنم که بلند شه و بیاد و ما رو سر کنه ولی راست که میاد همینطور تا لب هیرمند که میرسه فکر این بوده است که چه خواهد گذشت با اینکه برادرش گفته بود که نه اسفندیار مرد خیراتمندی است در حقیقت مقدس مقدسم هست هر چه کرده نیکی کرده میگه از ما او بدی ندیده که کاری بکنه اصلا این فکر رو از سر دور کن ولی رستم میاد نگرانه در حقیقت یه مقدار از این نگرانی هم درतीश کم میست که داشته انان را گران کرد بر پیش رود همی بود تا بهمن آرد درود انان را گران کرد یعنی انان عصبو کشید یه قدری توقف کرد برای اینکه بهمن برسه و پیغام رو به پدرش برسونه بعد رستم بیاد اینجا فردوسی دیگه حرف رستم رو میگذاره کنار یعنی می رستم انان رو گران کرد و ایستاد بعد برمیگرده به رفتن بهمن پیش پدر و گفتگوی او با پدر میفرماید که چو بهمن بیامد به پرد سرای همی بود پیش پدر بر به پای بپرسید از او فرخ که پاسخ چه کردن نامدار چو بشنید بن پیش پدر به بشنیده بود در به در در, به در یعنی باب به باب و قسمت به قسمت نخستین درودش ز رستم بداد پس آنگاه گفتار او کرد یاد ملازم می‌فرمایید که باز پیغامی که رستم داده بود به تفصیل فردوسی تکرار بمی کنه و حرفی نمیزنه فقط میگه پیغام رستم رو یاد کرد بعد و خودش رو میگه بهمن همه دیده پیش پدر باز گفت همان نیز نادیده اندرنهفت نهافت یعنی اون چیزی که خودش به عقیده خودش بود اونم گفت به دو گفت چون رستم پیلتن ندیده بود کس به هر انجمن دل شیر دارد تنش جنده پیل نهنگان بر آورد دریای نیل دریا رو به معنی رود بکاریم برای فردوسی میدونیم که نیل اسم رودخانه است اسم ترین درازترین رود دنیاست ولی بارها به عنوان دریای نیل در شاهنامه آمده و درستم هست یه معنی دریا رودخانه است دل شیر دارد تن جند پیل نهنگان برای دریای نیل بیا آمد کنون طالب هیرمند عبی جوشن و خود و گرزو و کمند ابی همون بیست یعنی بدون سلاح آمده اینجا بیامد کنون طالب هیرمند ابی جوشن و خود و گرز و کمند به دیدار شاه آمدستش نیاز ندانم چه دارد همی با تو راز میگه که رستم هم آمده و الان روی رودخونه است و میخواد تو رو ببینه نمیدونم چی میخواد بگه ولی استنديار که خودش رو جهان پهلوان میدونه و پهلوان هم بود نه اینکه نباشه خوشش نیامد از تعریفی که بهمن از رستم کرده بهانه‌ش هم این میاره که تو این تعریفت از رستم می‌کنی دل کسانی که با من آمدن میشکنی یعنی روحیه‌شون رو ضعیف می‌کنی به هر حال اینطور عکس عمل استنديار رو فردوسی نشون میده ز بهمن برآشفت شفت و را بر سر انجمن کرد خار به دو گفت که از مردم سرفراز نزیبت که بازن نشیند به راز وگر یعنی و ویا وگر کودکان را به کاری بزرگ فرستی نباشد دلیر و ستوک. تو گردن کشان را کجا دیدی که آواز روباه نشنیده ای که رستم همی پیل جنگی کنی دل نام بر انجمن بشکنی اینا رو با بهمن در حضور مردم میگه ولی با برادرش پشوتن که امین سر او هم هست و مطالب پنهانی رو با او در میون میگذاره این طور میگه چون گفت پس با پشوتن به راز که این شیر رزمآور جنگ ساز جوانی همی سازد از خیشتن زستالش همانا نیامد شکن مخصودش رستن میگه با اینکه سن زیادی از او گذشته از خودش جوانی نشون میده و معلومه که گذشته زمان نیروی او رو کم نکرده و از سال بر او شکن نیامده این مطلب درسته پهلوانان حماسی معمولا در تمام حماسه های دنیا گذشت زمان در فر پهلوانیشون و در زور آوریشون اثری نداره به هر حال اینجا گفتگوی بهمن و پشوتن و اسفندیار و اینا همه تموم میشه و اسفندیار میاد چون رستم اونجا لبه رودخونه منتظره میخواد برونم ببینش دیگه گفته که سلاح آمده و میخواد شما رو ببینه این است که اسفندیار حرکت میکنه بفرمود کسب سیاه زین کنند به بالای او زین زرین کنند پس از لشکر نامبر صد سوار برفتند با فرخ اسفندیار بی آمد دمان طالب هیرمند به فتراک بر گرد کرده کمند از این سو خروشی برآورد رخش وزان روی اسب یل تاج بخش دو تا اسبا شیهه کشیدن به فرمود کسب سیگر زیر کنید به بالا هز از از لشکریایی نو و ساد سوار بر افتاد باور فرخس فا من فکس نو اکبر گیر از به تا چنین تا رسیدن نزدیک آب به دیدار هر دو گرفته شتاب تهمتنز خشکندر آمد به رو. از بالا و از خشکی آمد در رودخانه مقصودش این است که از رودخانه گذشت تبییس از جاهایی که میشود رد بشن تهم تنز خوشگنده آمد به رود، پیاده شد و داد یل را درود پس از آفرین گفت که از یک خدای همی خواستم تا بود راهنمای که با نامداران به دین جایگاه چنین درست آید و دو نشینیم یک جاب و پاسخ دهیم همی در سخن رای فرخ نهیم چنان دان باز رسنم همه عزت و همه احترام و همه کوچکی و همه اظهار صداقت و خدمت گذاریم چنان دان که یزدان گواه من است خرد زین سخن رهنمای من است که من زین سخنها نجویم فروغ نگردم به هر کار گردت دروغ که روی سیاوش اگر دیدمی بدین دین رویی نگردیدمی نمانی همی جز سیاوخش را مران تاجدار جهان بخش را خونک شاه کوچون تو دارد پسر به بالا و قوت بنازد پدر خونک شهر ایران که تخت تو را پرستند و بیدار بخت تو را دوژم گردد کس که با تو نبرد بجوید سرش اندر آید ب گرد همه دشمنان از تو پر بیم باد دل بدسهگالان به دو نیم باد همه ساله بخت تو پیروز باد شبان سیه بر تو نوروز باد تمام دعا و تمام درود و تمام تحسین و تمام آفرین طبیعی که در آغاز کار اسفندیارم پاسخ شایسته به این حرفهای رستن میده به همین ترتیب و با همین رفتار اما بعد متاسفانه خواهیم دید که کم کم درگیری پیش میاد حالا سیر مذاکرات رو تعقیب میکنیم چوبشنید گفتارش اسفندیار فرود آمد از باره نامدار گوه پیلتن را به بر در گرفت چو خوشنود شد آفرین برگرفت که یزدان سپاس ای جهان پهلوان که دیدم تو را شاد و روشن روان سزاوار باشد ستودن تو را یلان جهان خاک بودن تو را خنک آن که چون تو پسر بایدش یکی شاخ میگند که بر بایدش خونك آنکه او را بود چون تو پشت بود ایمن از روزگار درشت خونوک زال کش بگذرد روزگار به گیتی بماند تو را یادگار بدیدم تو را یادم آمد زریر سپهدار از و و به دو گفت رستم که ای پهلوان جهاندار و بیدار و روشن روان یکی آرزو دارم از شهریار که باشم بران آرزو کامگار یه خواهش دارم از شما خرامان بیایی سوی خان من به دیدار روشن کنی جان من سزای تو گر نیست چیزی که هست بکوشیم و با آن بساییم دست تعارف معمولی هر ایرانی است که به هر ایرانی دیگری به هر نهبی که باش برخورد میکنه سعی میکنه او رو به خانه خودش ببره از او پذیرایی بکنه مهمانی بکنه رستم اینجا کوچیکی هم میکنه میگه آرزوی من این است که تو بیای خونه من روشن کنی و اگر چیزی که ما داریم قابل شما رو نداره و هر حال چه هست میشینیم و یه دستی بهش میزنیم ولی اسفندیار به که خودش میگه این اولین خواهش رستم رو قبول نمیکنه خب خیلی کار سختیست فرمون روای سیستان جهان پهلوان ایران اگر کسی که آمده اینجا شاهزاده بزرگ ایران ولی عهد نره به منزل او این باعث شکست اوست دیگه با این حال اسفندیار دلائل میاره که این کار رو نمیتونه بکنه چون این پاسخ آوردش اسفندیار که ای از یلان جهان یادگاه هران کس کجا چون تو باشد به نام همه شهر ایران به دوش آتکام نشاید گذر کردن از رای تو گذشت از برو بوم و از جای تو ولیکن ولیکن یعنی نخر دیگه ولیکن ز فرمان شاه جهان نپیچم روان آشکار و نهان به زابل نفرمود ما را درنگ نبا نام داران این بوم جنگ تو آن کن که بریابی از روزگار بر آن رو که فرمان دهد شهریار فوری پیشنهاد چم میکنه تو خود بند بر پای نه ویدرنگ نباشد ز بند ننگ تو را چون برم بسته نزدیک شاه سراسر به دو بازگردد گناه و از این بستگی من جگر خسته به پیش تو اندر کمر بسته‌ام نمانم که تا شب بمانی ببند این نمانم اول این نمیگذارم اندر معنی متعدی است نمیگذارم تا شب در بند بمونی نمانم که تا شب بمانی ببند اگر بر تو آید چیزی گزند همه از من انگار ای پهلوان بدی ناید از شاه روشن روان یعنی من زامن که شاه هیچ ستمی مجازاتی به تو نمیکنه. هر بدی بود مسئولیتشو چه به گردن من این پیشنهاد شد که تو این کارو بکن بعد حالا وعده میده که اگه ای تو این کارو بکنی من چه میکنم چه میکنم از آن پس که من تاج بر سر نهم جهان را به دست تو اندر نهم نه نزدیک دادار باشد گناه نه شرمایدم نیز از روی شاه چو تو بازگردی به زابلستان به هنگام بشکوفه گلستان ز من نزیابی بسی خواسته که گردت بر او ها راسته این وقت فرمان شاه رو تو اطاعت کردی نه گناهی کردیم نه اینکه از پادشاه شرمنده شدیم و همه کارا درست میشه بعد هم من سیستان رو به اختیار تو میذارم به تو بزرو بخشش میکنم از این حرفا ولی رستم طبیعیست این تنها حرفیست که براش قابل قبول نیست بدو گفت رستم که ای دار همی جستم از داور کردگار که خرم کنم دل به دیدار تو کنون چون بدیدم دیدم من آزار تو دو گردن فرازیم پیر و جوان خردمند و بیدار دو پهلوان اینجا ببینید که چقدر گفتار رستم با دقت و با احتیاط و با خیرتمندی تو امید. دو گردن فرازیم پیر و جوان خیرتمند و بیدار دو پهلوان بترسم که چشم آید همی. سر از خواب خوش برگراید هم. همی. همین یاودن در میان دیو راه دلت کج کند از پی تاج و گاه اون اعماق زمیر اسفندیار اینه که میخواد به قیمت بند گذاشتن به دست و پای رستن به تاج و تخت برسه و این یه فکر اهریمنی است در واقع در مغز او منتها یه پوشش احورایی روش کشیده که بله از فرمان شاه که نمیشه کسی سرپیچی بکنه میگه که من میترسم که دیو این وسط راه پیدا کنه و دل تو رو برای تاج و تخت به بیراهه بکشه همین یابدان در میان دیو راه دلت کش کند از پی تاج و گاه یکی ننگ باشد مرازین سخن که تا جاویدان آن نگردد که, که چون تو سپهبد گزیده سری سرفراز شیری و ناماوری نیایی زمانی تو در خانه من نمانی بدین مرز مهمان من این برا من بزرگترین شکسته که تو به خانه من نیاید گر این تیزی از مغز بیرون کنی به کوشی بر دیو افسون کنی زمان هرچه خواهی تو فرمان کنم به دیدار تو رامش جان کنم مگر بند که از بند آری بود شکستی زشت کاری بود نبیند مرا زنده با بند کس که روشن روانم برینست و بس زت و پیش بودند کنداوران نکردند پایم به بند گران میگه این یکی رو من نمیتونم هرگز دست و پا به بند ندادم الان هم نمیتونم هیچ کسم تا کنون پای من رو به بند نیابرد اسفندیار هنوز نرم و هنوز سعی میکنه که با رفق و مدارا مطلب رو سر و صورتی بده به پاسخ چنین گفتش اسفندیار که ای در جهان از جوان یادگار همه راست گفتی نگفتی دروغ به کججی نگیرند بردان فروغ که پشوتن شناست که شاه چه فرمود تا من برفتم به راه میدونه که رستم هم خبر داره که برادرش پشوتن مرد خدمند است میگه برادر من گواهه که شاه چه جور به من دستور داد که من راه افتادم. مقصود اینه که من اونجا دفاعم کردم حرفم زدم ولی اصرار داره پدر من و مرا مجبور کرد که بیام. ولی که پشوتن چهنااست که شاه چه فرمود؟ تا من برفتم به راه گر اکنون بیایم سوی خانه تو، بومم شاد و پیروز مهمان تو تو گردن به پیچیز فرمان شاه مرا تابش روز گردت سیاه میگه اگه مهمون تو بشم اولا بعد تو سرپیچی کنی من وضعم بد میشه اما دوم دگر آنکه که گربات و جنگ آورم به پرخاش خوی پلنگ آورم فراموش کنم مهر نان و نمک به من برد دگرگون گردت فلک میگه اگر مهر نان و نمک خوردن واتورم فراموش کنم اینم است و فرق بر سر من طور دیگر خواهد گشت و اگر سر به پیچمز فرمان شاه بدان گیتی آتش بود جایگاه تو را آرزو گرچنین آمده است اگر فکر مهمونی نداری یک امروز با می به ساییم دست میگه اگه میل داری خیلی خوب امروز رو با هم می میخوریم که داند که فردا چه شاید بودن؟ به دین داستانی نباید زدن امروز رو ما فعلا خوش بگذاریم رستم میگه چشم؟ بدو گفت رستم که ایدون کنم شوم جامعه راه بیرون کنم به یک هفته نخچیر کردم همین به جای بره گور خوردم همین به هنگام خوردن مرا باز خان چو با دوده بنشینی از پیش خان میگه وقتی نشستین سر سفره منو خبر کن میام از آن جاگه رخش را بر نشست دل خسته را اندر اندیشه بست رستم وقتی برمیگرده میدونه که پشت این ظاهر آرام هنوز طوفان خیلی مهیبی نهفته است اینه که بلافاصله در برگشتن متفکر و اندیشناک میشه بیامد دمان تا به ایبان رسید رخ زال سام نریمان بدید بدو گفت که مهتر نامدار رسیدم به نزدیک استندیار سواریش دیدم چو سر صحیح سهی و بازی و بافرهی تو گفتی که شاه فریدون گرد بزرگی و دانایی او را سپرد به دیدن فزون آمد از آگهی میگه اونچه چه به گوش از اون میشنیدم وقتی دیدمش دیدم بیش از اون است که از اون میگفتن به دیدن فضون آمد از آگاهی همیتافت زو فر شاهنشاه این سرگذشت رستم که از اونجا میاد با پدرش بازم تعریف و تمجید از اسفندی اما وقتی رستم میره اسفندیاری که پیشنهاد کرد که خب حالا تو امروز بیا با می بخوریم بیشتر فکر میکنه مینه خب فردا ممکنه وایستن تو روهم بخونم با هم جنگ کنن بنابراین این چه دعوتی بود من کردم چرا این کار کردم پشیمون میشه و بعدم نمیفرست دنبال رستم باز یه خاریه دیگه ببینید یکی کمجور قدم بقدم اول میگه بیا خونه من میگه نه او میگه تو بیا اینجا با هم میگه چشم بعد که میره فکر میکنه که نه اینم درست نیست نمیفرست اینجا حالا این دودلی ها و تردیدها و گرفتاری هایی که پیش میاد و دخالت هایی که برادر اسفندیار پشوتن میکنه که بلکه به یه ترتیبی این مسائل اصلاح کنه اینا مطرح میشه